ایران بازنگری در تاریخ قلمرو میانی اقوام آنو اقوامی هستن که در ریگویدا معادل همون ایرانیان که گروه های خاص دارن مثلا پرشوه ها هستن که خب اینو دیگه من نمیگم همه میگن که پرشوه ها همون پارسان، باز بازی گروه دیگه دارین پارثوه که قایدتا همون پارت ها یا باز پارس ها باید باشن اسنادی که ما داریم بگیم من بیشتر چون پژوهشام در دنباله پجوه دوستان تو این منطقه است. می توان به سرزمینی به نام مزا یا مزه یا مدای اشاره کرد به همین نام در های دودمان ششم فرعون ها یعنی دوران فرمانروایی پپی یکم در 4250 سال پیش و سپس در دودمان 12 یعنی 3900 سال پیش اسم این شهر اسم یک واژه هندو روپویس بوده این دیگه خویلشون در کتاب های مختلفیشون گفتن این یک سکونتگاه مادیسی و یک پادشای باید اسم مادید رو اسم هندو روپایی دوش اسم هرگی اینن چرا باید این اسم در کتیبه سارگون اکدی بشه به نام خداوند یگانه با عرض سلام و ادب احترام خدمت شنوندگان گرامی امیدواریم که حال همگی خوب باشه دوستان گرامی بسیار خوشحالیم که در قسمت دهم برنامه ایران ایرانویج در خدمت شما هستیم برنامه ایرانویج تلاشی است برای بازخانی و بازشناسی تاریخ قلم روی میانی و تا قسمت نهم این برنامه ما مقدمات را تقریبا به یه جایی رسوندیم در بحث اسناد هستیم احتمالاً در این قسمت بحث اسناد رو به پایان خواهیم رسون. و به سمت ترسیم نقاط تاریخی ایران اون نقاطی که برای ما روشن هست از لحاظ اسناد اسطوره‌ای از لحاظ اسناد زبان شناختی دیرین هواشناختی و اون نقاطی که ناروشن هست و یک خطی رو رسم خواهیم کرد و به امید خدا بر اساس اون اطلاعات و اسنادی که در اختیار داریم به تحلیل این تاریخ خواهیم پرداخت و تا زمینه فراهم بشه برای شروع پژوهش دوباره و بازخانی و بازنویسی دوباره تاریخ قلمرو میانی بخصوص تاریخ فلات ایران در قسمت گذشته سرکار خانم دکتر احسانی صحبت کردن از اسنادی که در ریگ وداها بود فرمودن که اسنادی وجود داره که یک سری جنگهایی از ساکنانی که در هندوستان زندگی می با یه سری اقوامی که بسیار منطبق هست بر تاریخ ایران بر تاریخ اقوام ایرانی تاریخ اقوام مثل پارسها، ها یا اون پشتونها و حتی بلوچها و مشخصه که یعنی 4400 سال پیش پشتونها و به اضافه‌ی ها و بلوچ ها در این فلات زندگی میکردند و اونقدر این سرزمین براشون عزیز بودی که براش میجنگیدن یعنی ما نمیتونیم بپذیریم که یه قومی ای که در واقع مهاجرت رو بیان میکنه که حدود 14 سال پیش سری افرادی یه سری اقوامی در طول حدود 500 تا 600 سال 5 قرن مهاجرت میکنن به فلات ایران و تازه هزار سال بعد از اون یک حاکمیت سیاسی تحت عنوان مادها بعد از اون هخامنشان به وجود میارند یعنی این اسناد نشون میده که حاکمیت سیاسی هم بوده نیروهای نظامی هم حتی بودن و جنگ هایی در این سرزمین صورت گرفته و برای حفظ این سرزمین و همچنین جناب آقای ایران مهر فرمایشاتشون رو شنیدیم اسنادی از میانه رودان فرمودن اسنادی رو از مصر فرمودن و همچین جناب آقای فیروزی عزیز بر اساس اپایونومیک و پژوهشی که انجام دادن درباره تاریخ مادها و تقریبا تاریخ مادها را به هزار سال قبلتر از اون تاریخی که مطرح هستش بردن اسنادی رو از پادشاهان اور، پادشاهان بابلی و بقیه اقوامی که همسایه اقوام ایرانی بودند نشون داده شد که حداقل 4000 سال قبل اسنادی وجود داره که این ساکنانی که بعدها به عنوان اقوام ساکن فلاتیر مطرح هستند اینجا بودن حالا حداقل حد اقلش حد رو در واقع میگیم ما حالا هنوز وارد مسائل تاریخی نشدیم که بگیم که در این سرزمین از کی حضور تمدنی وجود داشته و حضور صناعت و فلاحت وجود داشته و اساساً چنین مهاجرتی صورت نگرفته که ما بخوایم در واقع بپذیریم همونطور که سرکار خانم دکتر احسانی فرمودند و این فرضیه است و هنوز به عنوان نظریه علمی دقیق هم نیست که ما بخوایم از لحاظ علمی بخوایم اونو نقد بکنیم ولی بله چون به خاطر اینکه رسانه در اختیار طرفداران این فرضیه باز هم تأکید میکنیم فرضیه نه نظریه هستش ما برای اینکه بتونیم اون رو رد بکنیم مجبوریم خب بیایم صحبت بکنیم اسنادی رو رو بکنیم و برای اینکه اون تاریخی که خودمون میخوایم تاریخی که به عنوان تاریخ واقعی این سرزمین به نظر میرسه درست باشه مجبوریم این فرضیه رو زیر سوال ببریم سوالات و ابهامات بیشماری که در مورد این فرضیه اثبات نشده هست رو مطرح بکنیم تا اینکه در ذهن پژوهشگری ایرانی یا ترنگوری به وجود بیاد و پژوهش بکنه و هر چیزی که از خارج از ایران و از غرب میرسه اون رو نپذیره جناب آقای ایران گرامی؟ در قسمت گذشته خب شما فرمودین که اسناد خیلی زیاد هستش و ما قطعا نخواهیم گذشت و هرگز دقت رو فدای سرعت و سرعت رو هم فدای دقت نخواهیم کرد و هرگز اجلایی هم نداریم که زود وارد مسائل تاریخی بشیم گرچه خب شنونده خیلی مشتاق هستش که از این بحثایی که ما از قسمت اول تا داشتیم و اساساً و اکثر بحث بحث‌های بحث های نظری هستش چون برای مخاطب عام بحث های نظری تا حدودی میتونه کسل کننده باشه و میتونه چون بالاخره یه سری اصطلاحات و یه سری کلمات گنگی مطرح میشه که خب شنونده عام این رو نشنیده و ما هم البته با این واقف هستیم و وقتی که وارد مسئله تاریخ هم میشیم قطعا اون مسائل تخصصی و اصلاحات هم وارد خواهد شد ولی خب اون قسمت تاریخیش برای شنونده شیرینتر و جذابتر خواهد بود و جذب شنوندهش بیشتر خواهد شد ما نمی‌خوایم اینها رو فدای هم نخواهیم کرد نه تخصص رو فدای شنونده و در واقع مخاطب خواهیم کرد و نه مخاطب رو زاویقه مخاطب رو فدای بحث تخصصی خواهیم کرد ما خیلی مشتاقیم که در این قسمت از برنامه هم چون حالا دو تا کارشناس دیگر رو جناب کردیم و سرکار خانم دکتر آزاده احسانی حضور ندارند در ج... خدمت شنا و جناب آقای فیروزی خواهیم بود و ادامه اسناد رو در حد توانمون ادامه بدیم و تقریبا پرونده اسناد رو ببندیم که دیگه وارد مسائل تاریخی بشیم. بسیار خوشحالم که خدمت هستیم با سلام شنوندگان عزیز میفرمایید ادامه فرمایشات شما رو میشننوید خواهش میکنم درود دوباره به شنوندگان گرامی. چون اشاره شد باز به, به حضور خانم دکتر احسانی در نشست نهم و بله. اون اسنادی که در باره شرقی ما، خاوری ما، هند گفتن من یک سند دیگه ای بود حیفم بیاد و اینجا نگم بعد وارد اون اسناد دیگه بشم بله کوروش چون منتسب به هخامنشیان، هخامنشیان برآمده از فارس، ها و حقا ها هستن حالا ما بعد در باره ها توضیح میدیم نام کوروش در مت‌های سانسکریت به صورت اوتارا کوروس دیده میشه که نام شخصیتی بوده و نیز به منطقه‌ای در هیمالیا هم اطلاق میشه همچنین در حماسی ماها باراتا نبرد در نبرد پانیپات در, نبر پانی در منطقه میان سند و گنگ این جنگ در این منطقه به نام کورو کشتره یا دشت کورو رخ میده نام فرزندش و پدرش هم که کبوجیه یا کمبوجیه باشه در مت‌های هندی به جامونده از آشوکا مانوری نخستین شاه هند که به صورت کامبوجا دیده میشه آشوکا میگه اینها یعنی کامبوجاها مردمی مهاجر هستن که از سوی غرب یعنی از فلات ایران با آنجا کوچیدند ببینید ده. کاملا منطبق با اسنادی که خانم دکتر از ریگ ودا خوندن دقیق از ماندالاها خوندن یعنی اونا از شرق به سمت غرب میان اینا از غرب به سمت شرق گسترش پیدا کردن توی فلات و در منطقه پنجاب به هم رسیدن و جنگیدن یعنی مستقر بودن و زمانی که اینا به هم, هم مرز بودن با هم جنگیدن در اونجا اینا من فقط خواستم این سند هندی بخونم که هی فهمم درباره اون ارتباط این قلمروی میانی من یک سند دیگه دیدم از همون شلگی دودمان سوم اور شاه دودمان سوم اور جالبه. در سال 26م فرمان رواییش دختر خودش نیا لیمیداشو رو به عبد شاه لیبانو کشبش شاه سرزمین پرشی در میاره تا با او متحد بشه پرشی بل دقیقا همون مختصاتش دقیقا در شرق ایلامه. مثل همون مثالی که زدیم رامسس با شاه دخت برخ, برخ ازدواج کرد این هم دخترشو به عقد شاه سرزمین پرشی در میاره یعنی ببینید در زمان شلگی یعنی در چارزار خوردهی سال پیش پرشی در شرق ایلام بوده مستقر بودن شهری بوده کشوری بوده و این با اون متحد میشه دخترشو به عقد اون در میاره که با همدیگه متحد بشه. یعنی اگر این پارس ها اون موقع هنوز تو قطب شمال بودن مثلا شلگی پس دخترشو با اروا اونجا به عقد حال میگم درست گفتن خانم دکتر شما هم درست فرمودین واقعا هیچ چیزی که چارسخش رو حواس یک فرضیه اثبات نشده است ما باهی با در ردش سخن بگیم تنها به این دلیله که رسانه یعنی غربی‌ها این نظریه رو پشتیبانی میکنند یه دم تو داخل کشور ما که راحت طلبن رو تکیه دادن به پشتی و رسانه های غربی میگن و اینا هم باش می‌رخصن دیگه ما ناشاریم بالاخره برای که اون دست کم متوجه بشن یه چیز دیگه هم هست در کنار اون نظری علکی خب این اصناد رو بگیم حالا سند فقط میتونه میان رودانی نباشه ما اسناد دیگه هم اگه فرصت شد میگم که مربوط میشه به نشست های خیلی شاید 10 نشست نشاسته آینده حالا یه اشاره اینجا میکنم من درباره این گوتی ها حالا اینو ادامه بدم جالبه مثلا اون چیزی که ما از نیاکان حساب همین کورت های خودمون نشناسم که گوتی ها باشن کهن ترین اشاریه که بینا شده ببینید وقتی بینا اینا اشاره میشه توی سند به همشون اشاره میشه یعنی در سند لوگل آنموندو روای شهر ادب در 4500 سال پیش ایلام و پرشی و توکریش و گوتیوم و اینا در کنار هم نام برده میشن یعنی اینا همزمان در 4500 سال پیش فرمانروای میان میوردان همه اینا رو با هم نام میبره یعنی در کنار هم اینا بودن بودن حالا گوتیوم رو اینجا نام میبره مثلا تو این سند به گوتیوم همراه سرزمین‌های سوبرتو و کورگیش ارین اشاره شده که در پهنه شمال خاوری و همچنین ایلام در پهنه جنوب خاوری و پرشی در خاور ایران اشاره میشه در سند لوگل آنموندو در 4500 سال پیش از گوتیوم نام برده شده از سوبرتو از کورگیش ارین حالا این کرگیش ارین رو بعداً توضیح میدیم کجاست در پهنه شمال خاوری از ایلام هم در همون سند ردیف نام برده شده در پهنه جنوب خاوری میارودان و از پرشی در خاور ایران یعنی اینا اون سند نام برده شد سارگون اکدی 4350 سال پیش گوتیوم رو با دیگر سرزمین های شمال خاوری یعنی لولوبی ارمنو ارین و اکد جزء سرزمین‌های زیر فرمان خود برمی شمارد نرامسین 4300 تا 4200 سال پیش هم از گوتیوم گزارش میدهد که همراه دیگر سرزمین ها به دست قوم اومان منده ویران شده است در زمان پسر و جانشینش شرکلی شری این درگیری ها میان اکد، آمورو و گوتیوم بالا میگیره که سرانجام به فروپاشی دودمان اکد میانجامه جالبه اینا که نمیدونن بدونن اینا رو تاری فقط پارتومات آریا ها نیست سپس فرمان روایی کم و بیش 115 ساله گوتی ها در میان رودان یعنی بعد این درگیریا ها گوتی ها حاکم میان رودان میشن به مدت 115 سال سپس ماهی میگیم شلگی شلگی اینجاست سپس اینها به دست اوتو خگل در حدود 4000 خوردهی سال پیش این فرمان روایوی گوتیا بر میان رودان 115 سالشون به پایان میرسه و فرمان روایی دودمان سوم اور آغاز میشه یعنی اکادیا ها رو کنار گذاشته بودن بعد درگیر بالا میگیره ها حاکم میشن بعد اوتوخگل فرمان روایی دودمان سوم اور رو اونجا میذاره که اون شولگی و اینا از فرمان روایان این دودمان بودن خدمتون بگم تو این اسناد از یک جای دیگه به نام توکریش نام برده شده که تو توکرش. کتاب های توکریش که تو کتابایی که شما تو پشک شفروشی هست اصلا نگاه مشاهده نخواهید کرد در صورتی که تو اسناد کوهن هست و تا چون با داستان کوچه آریا و اینا جور در نمیاد دیگه خیلی هم بهش اشاره نمیشه نام سرزمین توکریش با این نام از راه نوشته های سارگون اکدی 4350 سال پیش ما آشنا میشیم از اشاره های جغرافی سارگون که به ترتیب از سرزمین های پرشی توکریش و ایلام یاد میکنه چنین برمیاد که سرزمین توکریش در تارک شمالی ای بوده که در دو گوشه جنوب آن ایلام در جنوب باختری و پرشی در جنوب خاوری قرار داشته. یه نکته دیگه رو بگم ما تو تاریخ رواییمون داریم که تورها و سلمها و و دودمان ایرج. اینا رو شاید من اینا رو همینطوری حالا فعلا گذرا میگم اینها رو ما آقا ایرانی ها فقط شامل پارس و پارت و ماد نیستن بعد بگن یه ادن بومی بودن کاسی و گوتی و چی و اینا من بخوام خدمت شما بگم مثلا همه فکر میکنن حقاها همین منظوم حقا منشیان بله حقا منشیان فقط پارس نبودن حقا منشیان از آمیختن همه جمعیت ایرانی به ویژه ویجه پارس مادها و ایلامی ها به وجود اومدن حقاها خودشون یه جمعیت جداگانه ایرانی بسیار جمعیت بزرگی در قسمت های شمالی تر زندگی میکردن نسبت به پرشی ها و گسترش بسیار عجیبی به سمت باختر داشتند. بنابراین ما میتونیم سلم ها رو بخشی از حخاها بدونیم بخشی از آموها بدونیم آموها هم جمعیت بسیار تأثیر گذاری بودن بخشی از پرشی ها بدونیم که تقریبا هیتی ها رو بدونیم مردمان جنوب اروپا ها رو بدونیم تور ها رو در جای خودشون میتونیم همون آموها بدونیم حخاها بدونیم که با سکاها خیشاوند بودن دانوها بدونیم که هیچ اشاره تو این تاریخ های موجود اصلا نمیدونن دانو چی هست دانو در اوستا اس نام برده شده از جمعیت ایرانیان بخشی از پرت ها رو بدونیم اون ایرجیار هم که اینا بیشتر با نام بومیان مثلا نام میبرن خب اینا اشتباه میکنن دیگه اما کلا چون اینا سیتمیات بیشتر ساکن بودن البته گسترش پیدا کردن نبندازی اونا شامل ماد ها بدونیم کاسی ها بدونیم خود باز بخش بزرگی از پرشی ها بدونیم یه نکته ای هست که حالا یک نظریه است که بعدن اینو ما دروارش گفتگو میکنیم سندت های ارائه می که ایلامیها، ها های پسین و آگاده ای ها اینجا جاش نیست بگم حالا ما خب بعدا اشاره می دیگه احتمالا این جمعیت های اینطوری آخرین بازماندگان کف خشکیده خلیج فارس بودن یعنی آخرین با. گروه هایی بودن که داشتن کف خلیج خم... فارس رو کم کم داشت پر می شد از سمت با. جنوب به شمال ترک کردن و عمدتن عجیبه که اینا با سامی ها اشتباه گرفته میشن یعنی میگن آقای دیگه ها که سامی بوده از جروع وارد میان رودان شدن یک کم بعد ذهن رو به این طرف ببریم که پژوهشایی که جدیداً ناسا انجام داده و این شهرهایی که کف خرید فارس پیدا شده دانشگاه بیرمنگام انجام داده آقا اینا آدم داشته توش بله ساکن آمده. داشته وقتی خرید فارس پر می شده اینا رفته رفته طی چند هزار سال که پر شده اومدن بیرون آخرین گروه هاش میتونن همونایی که حدود 6 7 هزار سال پیش اومدن بیرون و از جنوب وارد میانرودان و خوزستان شدن حالا این یک چیز دیگه این با واقعاً انقدر سند براش بیاریم که تا اثبات بشه. آقا دکتر من چون واقعا میخوام در این باره اگه فرصت بشه صحبت کنم تو این بحث. الان خواهش میکنم در اختیار شما من خواهش باز... کنم بزرگوارید اتفاقا اگر همین مسئله کفه خلیج فارس رو شما فرمودید خب ما در قسمت های آینده بهش خواهیم رسید و این نوید رو خدمت شما عزیز میدهیم که احتمال بسیار بزرگ اصلا حالا به نظر ما طبق پجوهش که ما انجام به خود بسیاری از پژوهشگران اون تمدنی که تحت عنوان اطلانتیس ذکر میشه احتمال در کف همین خلیج فارس بوده و به احتمال بسیار زیاد بله به احتمال بسیار زیاد همین تمدن اطلانتیس همین کف خلیج فارس هستش خب چون که بسیاری از خصوصیاتی که افلاتون از این تمدن آتلانتیس میگه با اینجا سازگار هست حالا برخی از پژوهشگران غربی احتمالا دانسته من فکر نکنم اینقدر مثلا حالا نمیدونم چه از چی کلمه‌ای استفاده کنم اینقدر مثلا بیدانش نیستن که بران مثلا در داخل اقیانوس اطلس مثلا دنبالی همچ تمدنی بگردن چون اصلا اقیانوس مشخص هستن میلیون ها سار شاید که زیر آب هستش اصلا امکان نداره اونجا ها باشی یا مثلا کف دریل مدیترانه و بالاترین احتمال علمی تاریخی اقلیم شناختی و دیرین هواش مشخص میکنه که این تمدن و این سازه های بزرگی که بشر ساخته در کف خلیج فارس بوده، و این تمدن اونجا بوده انسان های متمدنی اونجا زندگی می‌کردند. و بعد از اینکه از حدود ده, ده هزار سال پیش بدینسو که آب کل آب‌های دنیا آقای آنوسان نزدیکه 100 متر 90 متر بالا اومدن این قسمت خلیج فارس خوب رو میدونی که الان اونایی که آشنایی دارن با دریاها خلیج فارس عمق خیلی کمی داره این حدود 50 تا 90 متر هستش برحالا مثلا شما دریای خزر ببینید در یه جایی حتی تا 900 متر هم عمق داره کاری نداریم مشخصه که تو این کف خلیج فارس حتی های ناسا هم دوستان میتونن برم در اینترنت سرچ بکنم در کف خلیج فارس هم سازه هایی هستش که پیدا شده و احتمالا همین تمدن هستش که بقایاش میان در سومر اون تمدن رو به وجود میانن و به غلط الان در دنیا گفته میشه که سومیری ها بودن که برای اولین بار خط و زبان و تمدن و شهرنشینی و در واقع این مسائل رو به وجود آوردن و البته طبق اون گفته ای که پژوهشگران غربی میگن که این از بین رفتن تمدن اطلنتیس دفعی بوده به یک بار مثلا یک چیز عجیب افسانه میگن که در یک روز در یک لحظه بر به خاطر یک سیل بزرگ به خاطر یک بلای طبیعی بود و در یک روز این تمدن از بین که این در واقع غلط هستش از حدود اس کردم در هزار سال از آخرین دوره یخ بندان بدین سو که یخ ها در واقع آب شد و کف آبهای دنیا در حال ازدیاد بود و بالا اومدن بود در طی حدود نزدیک حتی شاید نزدیک سه هزار سال این منطقه پر آب شد و اقوامی که اونجا زندگی می کردن به سمت شمال و قرب و شرق حرکت کردن و در جاهای دیگه ساکن شدن جلاب آقای فیروزی خب منتظر فرمایشات شما هستیم از خدمتتون خدمتون که با درود جلسه قبلی راجع به این کتیبه های میان این صحبت کردم الان بله. متن بعضیشون رو من به چشم خورد بله. مثلا اون کتیبه آشوری که رونوشت از کتیبه زمان نرمسین از مهاجمان با نام اومنمنده نام برده ما می‌دونیم به روشنی می‌دونیم که این واژه در هزار اوله ماته به کار میرفته و توی یک جلسه هم گفتیم که چقدر دست و پا زدن امثال که بگن که این منده ها اون منده های هزارم نیستن ولی خب این واژه اونجا هست و از این سم در متن یونانی اینطور اومده ببینید در متن یونانی به این صورت اومده میگه که تا میان رودان کلی میگم بابل شهرش استوار شد و آرامش پیدا کرد ناگهان ماتا دقیقا بزارید متنوی خودم اما زمانی که شهرها بسیار مستقم شد ماتا به طور غیر قابل انتظاری نیروهایشان را به سوی بابل میارودن حالا شما اون بابلی که ما صحبت میکنی بابلی نبوده رهبری کرد و آن را گرفتن سپس آنها فرمان روایان خودشان را به عنوان آکیمان آنجا رو کردند که 224 سال هم حکومت میکنن خب خیلی جالبه بعد میاد میگه فلانی و فلانی و فلانی بعد از این هشتای که 224 سال حکومت کردن حکومت کردن تا برسه به سناخریب با بقیه والد. خب حالا یه عدد رو بقیه جمع کنید دقیقا میرسید به هم حکومت نرمسین که حالا آقای ایرام عددهایی که دادن بر اساس ما حالت بازه زمانی تعریف کردن یک کرونولوژی یا گاه نگاری کوتاه هست یکی میانه است یکی بلنده اون من نوشته بودم سه گاهنگاری میانه که نرمسی میشه 2250 و چهارت و 2199 در ده ده هر صورت بله. این دوتا چیز با هم تطبیق دارم اما دوسته تا نکتان قسمت خدمتون بگم که این قضیه فراتر از این داستان هاست این قضیه اقماس های در مطالعات متون تاریخی من نمیدام اینجا روش به بحث ارین صحبت کردم یا نه نه نه نه قرار شد که اون کورگیش ارینو خود ارینو شما یک بار تو نشاسته پیشین یک مطالبی رو ببینید گفتید. من علاوهس الهال... جالبیه بعد باز بش جدولشو خدمتتون آوردن بخونم ببینید ما یه نکته‌ای در هست که گفتم فکر کنم قبلا که میگه ماتا اسمش مات اول نبود اول اریان بود, بود یه اریانایی شد بعد مات خب این نکته خیلی جالب هست حتی اگر همه ماتان به این صورت نبوده باشن این میگه بخشی از ماتاز میشون چیز دیگه بوده آریان به یونانی گفته ما میدونیم که این باید تشکیلش از آرینا یا ایریه یا آریه بزوین پسوند نباشن ایران سرزمین آریایی ها حالا من کاری با این ندارم من میخواهم ببینم که آیا در متون در همون 4200 تا 2300 سال پیش ما با این واژه نزدیک به ارین آریان میخوره یا نه من این واژه برام بسن ارین که صحبتش هم شد این در متون میارودنی هزارم سوم اواخر به چشم میخوره خیلی جالب ببینید چهجوری ترجمه کرده دوره ای بی سین این حالا هزاره اول اوایل هزاره دوم است 963 پیش از میلاد مترجم غربی اینجا کلمه ایرین رو به نیرو ترجمه کرد تروپ خیلی بعد میاد دوره همون دوره ای بی سین این در یک نام وجود داره ایرین دنا دان این در یک اسم خاص شده گفت اسم خاص بعد میاد جلوتر اینو به دشمن ترجمه کرده مترجم به این ترجمه کرد بعد میایید جلوتر دیگه اصلا ترجمه نمی کنه میگه واژه مثلا گیش ارین الا مق اصلاً همه چیشو ول کرده ایلامش که یعنی سرزمین بلند ترجمه نکرده که سرزمینی که درخت صدار داره در ناحیه بلند به اسم ارین خوشو رد کرده سرزمین دای دا درختان صدار بعد یه جا اینجا پوینتر ما دوران اور سوم مترجم ین رو ترجمه کرده به خدمت گذار خادم سروانس. بعد میاد به دور سوم اینجا مترجم به سولجر ترجمه کرده. من درک نمی کنم که یه واژره کهن باستانی اینا دیگه چقدر مثلا زبانش... زبانشون قوی بوده که مثل انگلیسی انرووزه ب غقا واژر صد معنی بده. تو کتم بنده نمیره. بعد دوره فرار میکنه اگه این هزار تا معنی داشته داشته چرا جا معنی نمیده. میای می به یک نقطه یک ترجمه مثل گیشتیر گیش ارین کور کور. در کور گیش ارین کی یعنی دید تموم کردی قضیه رو بعد بابلیشن رو نوشه بابلیشن مت ارین ای یعنی کور این دوتا ترجمه مختلفه کور گیش ارین پسوند کی دوباره یه حالت رونوش دیگه داشت مت ارین ای این واژه کور در قبلش کی در پسش و اون رونوش مت م... یا معات این مات همونه که ما یعنیم تونگیم وطن یه کلمه ایسان نیست که شده وطن بنی خاک و کور که به یک سرزمین های اول کوهستانی میگفتن و کی که پسفند یک سرزمین قطعا هست در همه پشت سرزمین، تمام سرزمین های خاص کی به کار رفته بعد ارین اومده مترجم این همه گزاره ای طول دراز و فقط ترجمه کرده The Cedar کوهستان صدا یعنی از کور اولش نگزشته کوهستانو گفته صدا رو گفته ارینکی رو فراموش کرده آره یعنی این واقعا من فکر کنم یارو درک کرده یعنی فهمیده که با اون اصلا من سر موقت... خورم دقیقا. دقیقا فهمیده که با اون پیشورزهای اولیش تفاوت داره اصلا زادت آقا شاید تو... نمی‌دونسته که تا اسم قدیمیشون اریان بوده ولی شاید تو خودش فکر کرده که این ارینه بشه ایران میشه ما یه کاری کنیم که این ایران این نشه, نشه کوهستان صدار نخواست به کوهستان صدار سرزمین ارین از این موارد شما وقتی میبینید ما اعتمادمون به اون پجورشکر دانشگاهی غربی باید دست بدیم در این زمینه اینا واقعا جنایات علمی باستان باستانشناسیه در زبان شناسیه حالا عرضم به خدمتون که یکی از مهمترین مطالبی که اینا مطرح میکنن میگن که اگه زبدی من قبل از این که بگم اون متن سارگون اکدی هم بگم چون این متنشون آورده میگه که در بند 57 کتی کتیبهش میگه کرزینه که در بالای فلان سرزمین جای دارد کسانی که سبک موهایشان با یک تیق انتخاب می شود. مثل مثلا سرشون تیق می‌زدن خب آنها بلعیده می‌شوند با آتش کسانی که خاک سپاری را نمیشناسند. کاملا یک سنت قدیمی اندورپایی توصیف میکنه با یک شهری که اسم هندورپایی دارد بعد عرضم به خدمتتون یه نام هندو اروپایی است، در یکی از شهرهای قربی میان رودان الان اسم این شهر من در جلچش هم نیست ولی خیلی جالبه برای کسانی که خیلی دیگه رو اسامی مانور میگن که فلان اسم پادشاه پرهشی هندو اروپایی نیست این اسم میان رودانیست جواب اینها الان این پیدا کنم در فرصت بعدی دقیقاً اینم میام ذکر کنم پادشاه یکی از شهرهای غربی میارودانه که تو کتاب خروویتس هست از کاملا هندورپاییه خب این چه جوری میشه الان من بعد بیام بگم که تمام غرب میانرودان، تمام اون منطقه که اسم شهر مثلا میارودانیه یعنی سامی میزنه باچش هندورپاییه پس تمام سا... ساکنین هندورپایی بودن از اگر این تفسیرا بخوایم بکنیم به اون هم وجود داره ولی نه این هم مثل حالت شرقیش میتونه میشه تاثیر فرهنگی هندورپاییان باشه بر اون منطقه از میارودان به هر دلیلی این میخوام که رو زیاد نباید این دوستان خیلی دلخوش باشه ولی حالا ما ای بخوام ریستر صحبت کنیم که اقایی حالا این همه ما همه هنگی داریم اما کی بودن چی بودن اسم پاچانشون چیه خب بله ما حالا تنها بپذیریم که یه آسری آدم به اسم ماد یا ارین در اونجا جا از یک نژادی وجود داشتن نژاد ایرانی اینا کی بودن چی بودن باچانشون که این 8 تا پاچاکتون متون یونان اسمشون چیه بعد از اینا دور میگیم ماتامی اینا کیان ما اینا رو بخوایم وارد بشیم اینا محاسبات ریاضیات هم می‌طلبه یعنی تنهایی نیستش ما بخوایم اینها رو بر اساس متون بچینیم و بعد یه در واقع دیوار کجی بره بالا و هی برخورد کنه یه جاش با پاچان ایلامی جاش آشوری تو هم تو هم بشه و ما رو جمع کنیم یری از خیلی خوب میطلبه که من اینو خ... متاسفانه باید بیم که در علوم انسانی من ریاضیات قوی ن... نمیشناسم بچه‌هایی هم که باشون هم کلاس بودم استادای خیلی از استادی که باشون کلاس داشتیم ریاضیا در ذهن اینا جایگاهی نداشت بانه. کما اینکه الان چند ساله در سایت ناسا سایت ناسا شما میدونید دیگه اخبار خیلی مهمو خبری میکنه بقیه داده میکرم میذارید شما باید به سایت ناسا اینا رو ببینید در سایت ناسا یک سری نمودارها و گراف ها و اکس از برفست خرشید گرفتگی مثلا فلان بازه زمانی در دوران باستان جدید نها سال هاست گرفتگی معروفی که دو کتاب هرادور گزارش شده از... که به جنگ ماتو و لیدیایی ها خاتمه داده سال خورشید گرفتگی 584 پیش از میداد نوشه شده هنوز تو کتاب های ایران ماچننس ایرا اینه 0.85 سابق بنویسن. و وقتی اینو بنویسن یه جا پاچه‌ها که می‌خوام این پاچن مود رو ردیف کنم می‌بینن تو هم دیگه. یعنی این دیاکوئه میره جایی که اصلا نمیتونه اونجا باشه. اینا یه بار نشستن که اینها رو اصلا حساب کتاب هرودیتیو جمع کنن بعد به این اشتباه برسن بفهمه که یه جا بعد برن بگردن که چرا باید حل بشه. یعنی ما در این حد شناسیمون دوچار ضعف در بررسی کردن خودش هست. این مرد پادشاهانه ما میخوایم هشت گانه و 4 پیش از دیاکو رو بحث کنیم به نظر من یه پایه میخواد اون پایه که هر همین این که ما میشناسیم و بذاریم سر جای اصلیشون اصلی بعد اصلی دقیقاً این چون سر جای اصلیشون نیست این بازی زمانیه نه که حالا خیلی فا... دو فاصله داره یا 10 سال 20 سال فاصله داره تو اسلاک کردنش وقتی سر جایش نشینه. این میشه اون ادعاهایی که میشه ریزم بدن که میان میومدن مواسه میکردن این چهار تایی بالا سید یاکون جوردنه میومدن با حوادث اطراف یا می تو خور دیاکو یا میرفتن خیلی فاصله می با دیاکو ولی گفتم حالا این افسانه است بس این برداشت بعد از گذشته بوده در صورتی که نه این ریاضت اشتباه شما بوده. ما. در این فرصت کوتاه من فقط اینو بگم که این چارتایی که فعلا میشناسیم تو چه بازه زمانی چرا باید قرار بگیرن خب آخرشون رو ما میدونیم به خاطر کتیبه نبونعیده بابلی که میگه در سال ششم نبو نعید اگمتان تصرف شد میشه سال 550 تا پونسار پیش از میلاد این تای ماتار رو مشخص کرده ما وقتی سالای موتور رو بریم اقعب بریم سی و سال آستیاکسو، آستیاکس و یا هم بهش میگن مدت زمان فرورتی شد خوب اخشتره رو که اینجا خوش نکته داره میگه او چهل سال حکومت کرد با احتساب حکومت سکاها. خیلی هم این حکومت سکا رو جدا میکنن از اصل دانش زیاد دیدن. بعد میزنم بالا سر این آقا این میشه 67 سال مثلا. این این قرش جک میزنه میره اولی میذارن عقب تر. به هم میریزه این بعد 22 سال فرآورتیشه بعد 50 اگهش نکنن 2 3 ساله وقتی اینا رو بچینیم نفر اول تو کتابای تاریخی افسر 28 تا یه شکنون از در نمیاد یعنی خوره هرودوت این رو میگی ما این در نمیاریم که فرمون ایم. انتگرال هم نیست جمع تفریقه 699 در میاد حالا دقیقی 699 پیش از میلاد در میاد اون چهارت های قبلیش دقیقا فیکس میشن با این یعنی این پایه محاسباته که هنوز یه ماچیناس دل به این کار نداده بله چون که بالاخره همه چیز از اینور از این سمت دقیقاً بلدن. پیچ و مهره است ببین مثلا شما ماشین ماشینا چیز کنید این پیچ و مهره یا هر دستگاهی میخواین سر هم کنید اینا بعد دقیق با هم پیچ بشن وقتی نشن این قطعه می جای اون قطعه رو میگیره و بعد ما میگیم که نه اصلا طرائی اشتباه بود از اول نه شما درستو میبندید بله خیلی متشکرم جناب آقای فیروزی عزیز شنوندگان گرامی برنامه ایران ویج رو میشنوید از سایت اینترنتی www.صدایومید.com پول ارتباطی شما شنوندگان گرامی با برنامه ایران ویج و تمامی برنامه های صدای امید ایمیل info at صدایومید.com هست منتظر شنیدن پیام ها، پیشنهادات، انتقادات و تذکرات شما شنوندگان عزیز هستیم پیامک این برنامه شماره 3068 بیست و دو چهل و چهار هستش. از طریق این پیامک هم میتونید با ما ارتباط بگیرید. جناب آقای فیروزی به نکته خیلی خوبی اشاره کردن اینکه در ایران شناسان ما مورخین ما با علوم دیگه آشنایی ندارن از جمله مثلا ریاضی یا مثلا با علم نجوم و ما توی یکی از برنامه هم عرض کردیم که متاسفانه دانشجویانی وارد های علوم انسانی میشن که از لحاظ تحصیلی خب اینجوری مد شده اینجوری متاسفانه یک سنت بد و یک عادت بد بین خب ایرانیان حالا نمیدونم کی این سنت رو گذاشته که معمولا بچه هاشون رو به رشته های علوم انسانی نمیفرستن حالا شاید مسئله اشتغال هست یا شاید مسئله دیگه ای مطرح هستش و معمولا خب ضعیفترین دانشجوهاشون هاشون میان تاریخ و باستان شناسی و اساتیدی که حالا ما درسته به اساتید بزرگ تاریخ کشوران احترام میذاریم ولی خب معمولا خب با این چند تا استاد خیلی مبرز ما نمیتونیم تاریخ و باستان شناسی خودمون رو جلو ببریم. باید مجموعه دانشجویان خیلی نخبه از رشته های مختلف بیان و آشنایی پیدا بکنم با علوم دیگه. با همین نکته که در مورد مثلا خورشید گرفتگی، با در مورد همین خورشید گرفتگی ما نه تنها مساله ماده ما مسئله مثلا گشتاس هم حتما میخوایم بررسی بکنیم یا مساله زرتشت رو با این سوابق نجومی و حمسه سوابق اقلیمی سوابق دیرین هواشناختی چون ما اسنادمون اسناد نوشتاری که تو هیچ جای دنیا ما سندی که نوشته شده مال 3000 سالش همین هم نداریم به جز اون سنگ نگاره ها بالاخره اسنادی که برای تاریخ به کار برده بشه مجموعی این علوم هستش و متاسفانه در میان مورخین تاریخ نگاران و تاریخ شناسان باستان شناسان ما علوم جانبی که کمک میکنه برای شناخت تاریخ شناخت درست تاریخ ضعیف هستش در میان این عزیزان و به خاطر همین هستش که ما این تاریخ ناقص و بسیار فلج رو داریم که به بچه های سرزمین داره تدریس میشه امید میفرمایید شما رو حالا هر چقدر در مورد اسناد یا نکات پایانی چون ما دیگه به پیش‌نویسندگان از قول دادیم که تو این قسمت دوم دیگه اسناد رو تموم بکنیم یا جمع بندی هم در مورد اسناد بفرمایید که دیگه ان در قسمت 11 هم بریم سراغ نقاط تاریخی خواهش اسناد که تموم نمیشه دیگه حالا ما تمومش می‌کنیم دیگه من میخوام به به ویژه جوانان کشورمون بگم اون چیزی که درباره بنام تاریخ تعالا تا خوندن خیلی عالی بوده اونو شجاعی کرد، داروش اونجوری که شاپور اول رفت، شاپور دوم آمد، جنگیدند. والریان دستگیر شد. اینا خیلی عالیه. اما پیش از هخامنشیان رو که بهشون گفتن این پیش از تاریخ بوده و اینجا هیچ خبری نبوده، ما داریم خدمتشون عرض می‌کنیم که خیلی،, خیلی خیلی خیلی خبر بوده. خبرهای زیادی بوده متن تاریخ بوده که بعد این زمینه شده ولی اون حوادث بعد از عصر که خب هخامنشیان و اونها پایش اینجاست. یا در جمعیت ایرانی من فقط خلاصه بگم که اگه بخوایم نام ببریم ته ندارن جمعیت ها که در کنار هم و در دل هم زندگی میکردن شما فرض کنین مستندن آموها حالا من بارد اون بخش تاریخ مصرش نشدم که آموها در دودمان های پنجم و ششم مصر یعنی از 4400 و تا 4250 سال پیش کاملا ازشون نام برده شده و مستند هستن آموها که به نوعی همون نام برده شدن در برخی سنت ها اینا رو گروهی از همون ارینمنده ها نام بردن که حالا استون فیروزی به عمر ماتا میشاره کردن اون چیزی که نرامسید نام برد اونا اوماننده ها بودن اینا باید بررسی تاریخی بشه تفاوت ها اینا اینا همون تقریبا مرتوها ها هن. در تاریخ روایی روایمون به نام منتوها یا منوها یا هم میتونیم دنبالشون کنیم اینا با آموری های میارودان خیشا بودند ها مستند در اوستا و از اینها در اسناد در نامه های مصر 3400 1400 سال پیشم نام برده شده رد و پاشون در آرگوس دیده میشه خشای از اینا به عنوان از قوم میکنه زمان که داشته میرفته با آتن از اینو با اینا خویشاوندیشون رو اعلام میکنه میگم ما فرزندان پرسوسیم مادرش دانااعت شما از شما دانوها خدمتون بگم که، از اون دانوها در سند اخای تبرنامه اخایوس هم نام برده شده به موقعش اونم اون خیلی جالبی. جالبیه حخاها در اسناد مصری به نام هکتها نام برده شدند اینا همون با دریاورد نوردای لوئیزبانی به نام اکوشه یکی هستن با اخایهای اخیهای یکی این با آسوایی هایی که های فیروزی پجروش کردن احتمالا میتونن یکی باشن. با سکه ایرانی خیشاوان بودن مدها یا مزایها یا مادها آرمانوها، ها، یا کوشی ها پرشی ها که با پلسکی تپورها، تپور ها، پرت ها و پارساها اینا همه یکی هن یا نینوسیان که باز آی فیروزی خیلی پجوش جالبی دارن ارتعی ها، ارتیها، ها ستدیو ها، اوتی ها، گوتی ها یا کودی جمعیت کلی تورها، سرمتیها، سرمتی ها سگرتی ها آسیا نه آفریقا اکتیو هایی که هرودود ازشون نام برده کروها و کامبوجوها که تو اون سنده که گفتیم ها جمعیت کلی سعیرم ها ببینین یعنی این همه چیزی جلومونه که نمیرسیم حتی یه گوشش رو پجوش کنیم بعد بچه ما تا میگیم میگن بله میدونیم تاریخ رو پارت پارس ماد تفلک ها خب جز این چیزی نشیدن, چیزی نشیدن بله. این دانوها ها همجوری ارس کردم توی بلخی ها بله. بله تا دلتون بخواد دانو ها توی عوسته عرض کردم مستندن در کوهندترین بحش های ودا در منداله های دو و چار و شیش اینا توی عدبیات اونا راه پیدا کردن حدود 3800 سال پیش دانو ها 3400 سال پیش در مت‌های مصری دیده میشن 2800 سال پیش و تا حدود 3200 تا 2800 سال پیش در ادبیات ایجی اینها مستندند خدمتتون بگم که اینا اون که در اسناد العمارنه مصر هست اینطوریه که اینا با شاهشون تنائیس در سده 15 پیش از میلاد از سمت شمال باید به سوریه و فلسطین آماده باشن اما یه نکته‌ای داره حالا بعد ما به اینا جنگی میان شاه اینها همین دانوها با فرعون سسوستریس یا سنوسره در میگیره که باید بگیم که اینا به ثبوت همزمانی این دو شاه با زمان رو به 4000 سال پیش تصریح کنیم از رویدادهای تاریخی کوچ دانوها به آرگوس شبه جزیره یونان که در سده 20 تا 19 پیش از میلاد رخ داده زمان تازش اینها رو به مصر میتونیم بفهمیم آشکارا میتونیم بگیم که پیش از کوشه به آرگوس اینا به مصر اومده بودن تو اون توارنامه آخایوس هم دانائه یکی بله. از نوادگان عجیب توسه. بله یعنی اول تو اون توارنامه توس میاد مصر که از نام کوهن مصر بله. گرفته شده همینی تو بعد بله. یکی از فرزندانش دختری به نام دانائه بله. که مادر پرسوس. دقیقا دوون شنوندا گانی گرامی مثلا توجه کنم تو های بینامون مصر ما میگیم مصر ایجپت ایجپت می نویسن بله اون آن. یک داستانی داره دیگه نا بله. مصری ها به خود مصر بخودشون میگفتن کیم کیم بله این خدمتون میگم ما ایرانی‌ها بگفتیم به اون مصر حالا اون خیلی پیشینه جالبی داره اون کیم در قبت الان دیده میشه قبطی‌ها بله که تبدیل ک به ق کیپت کیم بعد ایجپت یا ایجپت یا کیم اون ریشش از اونجاست از اما اون چیزی که ما بهش میگیم مزرایه یا میسراته حالا به نام دریای مقدس و ایناس رو بعد ما باز بکنیم از اسناد باز بخوایم بگیم خب اسناد همشون چیزی که نیستن که این اسناد میارودایی نیستن که یک پجروش که های فیروزی کردم من از شما میپرسم هرودوت دیگه در سراغاز کتاب یکمش اینو توی مقاله فیروزی هم میتونن ببینین این متن کتاب سراغاز کتاب هرودوت دانشمندان پارسی خاطره جنگ تروها را به یاد داشتند و خود را مالک آسیا عنوان میکردن ایشان ریشه کین ورزی میان خود و یونانیان را به نبرد تروها یعنی نخستین لشکرکشی آخیه ها به قلم رو ایرانی نسبت میدادند. نبرد 1186 یا 1190 پیش از میلاد, از میلاد من میخوام ببینم اینا هخامنشیان چجوری در جنگ 1190 سال پیش بوده رو اطلاع داشتن ولی شکی این ورزیشون با 300 سال قبل خودشون 600 سال قبل از بس کجا چرا داشتن چرا اینقدر چیز بوده واسه مهم بوده میگفتن ما برای این با اونا کیم ورزی داریم که به خاطر اون نبرد تروآ اونا اینجوری کردن ما یعنی کاملا در متن داستان بودن گوش میدین اصلا خود تو متن نبرد بودن اگه اشتباه نکنم باز حافظم بدیاری نده آی فیروزی پژورشون میگه که در بند 22 از کتاب دوم دیودور دیودو. سیسیلی که اون بیشتر نقلاش از کتاب پرسیکای کتزیاسه که اون دسترسی کامل به گنجینه شاهی داشته دیگه یعنی اون مثل هرودود از روی کاتایوس ننوشته بوده باز اون از روی یکی دیگه ندیده باشه اون خود گنجینه شاهی رو دیده بوده تو اون بند اومده که پریام یا پریاموس جهت درخواست کمک در برابر یورش آخیها به فرماندهی آگام امنون نامهی به تاوتاموس منویسه این تاوتاموس یکی از شان نینویی یا نینوسیانه که یکی از اابساب ددبال های گم شده ایرانی کهفیروزی آی روش پژوهش کرده و این رو داره جاش شد توی تاریخ باز میکنه نامش چرا تو من به شما میگم مثلا بق بخشه یا همچ چیزی رو اونا مییسن مگابیز کووش رو می نویسن سایروس کامبیز می نویسن کامبیز نامدونم یارک بله این نحوه نگارش است دیگه این تو دنبال کنین. گول اون اون اوس اخرشونو نخورین داره. این کاملا ریشه ایرانی داره این نینوسیانم احتمالا آشوری ها باشه چون من دمیان آشوری اون... اسم نینوس زیاد منشن کردم خب اون نینوس داستانیه دیگه لولوبی‌ها هستند رو مناطق مردم بر خورده اینا در هم بر خورده بودن یک داره. جا افتادگی ها و جا های تاریخی تو تاریخ نویسی رخ داده دوستان میتونن مراجعه کنن با نام سورونا فیروزی مثلا تئوتاموس تروا بزنن این چند تا کلید واژه تو گوگل چندین مقاله میاد که ایشون کار کردن و این اینا رو روشن کردن این همین شهر نینوا که میگیم مال نینوئی ای هاست این بله. که نامش با آنوبانینی همین طور که میبینیم خیلی شبیه حالا میگم در هزار و و دوم کاملا ما به اینها میرسیم و آی فیروزی دیگه خودش هست و اینا رو باز میونه فقط من میخوام بگم تو اون بند 22 کتاب دوم دیودور ببینیم پریام جهت درخواست کمک در برابر یورش اخری ها به فرماندهی آقا ممنون نامی به تئوتاموس می میگه آخیها یا یونانیان به قلمروی تو یورش آوردند ما با آنها در نبرد روبرو شده ایم اکنون پسرم هکتور به همراه بسیاری از فرزندانم کشته شدند پس نیروی به سوی ما بفرست و سپه بودی را به هدایت آن بگمار در دنباله چه اتفاقی میافته خدمتتون بگم که توتاموس ممنون پسر تیسن که در اسناد ایجی تیتونوس نام ورده شده رو میفرسته اونا هم حال در اون جنگ شکست میخورن و و اونجا تیسن فرماندار پارس نام برده شده تیوتاموس به فرماندار پارس دستور میده که بفرست به تروها نیروی کمکی چون پریام من. درخواست کرده و میگه اینجا قلم روی به تیوتاموس میگه قلم روی توه به فرماندار پارس میگه ممنون پسرشو میفرست و کشته میشن و در 1886 ای 1190 حدود ها سقوط میکنه یعنی پشتیبانی میشه از سرزمین داخل فلات و اما شکست می‌خوره و صعود میکنه خب اینم چقدر دیگه ما سند بخونیم که سند دیودور با. سیسیلیه به نقل از پرسیکای که تو دیگه مال اصلا منم ننوشتم آیه فیروزی هم ننوشته ابوریهان هم ننوشته خود یونانی ها ننوشته خود یونانی ها حال دیگه, دیگه فکر خیلی متسکر کنیم جناب آقا ایران مهر گرامی شنمندگان گرامی قسمت دهم ده برنامه برنامه به پایان هستش به امید خدا از قسمت 11 هم وارد نقاط تاریخ قلم روی میانی خواهیم شد شما شنمندگان گرامی رو تا آغاز قسمت 11 هم به خداوند متعال می سپرم. خدا یار و نگه دارد